خیر. بوجورنی. خوبی؟ سه تا جواب خدا بده دلت باشه. خدا بده دلت برکت بده. اینا رو رسید کنید بین خودتون. پسوردا حرف عادیش پیش نمیاد. پیش نمیاد. پیش نمیاد. هر کدوم چند سر نون خوردید؟ بین اونها پیش میاد. بدبینی چقدر تو سرات بدبینی تو آینده یا نگیرم چقدر موسیقی از هم من دختر بدون جهاز به خونه وقت نمیفرستم بامو دوو تا بزن تو یختت آخه تو می داریش بدیم همین دیگه مشکل همین میگی بچت نمیخوای قبول کنی من یه شوهر میخوام که واسه بچم پدرم باشه تو قرآن خونت هم من جا تو میگی رو خیلی دوست دارم میگه خواستگاری با پررو پررو به من میگی من گفتم خب و خوب بود پخمام ایست هم تو روی داشت چا نه باسا تو روی من که حق کردتم این برپزن هم بیار گله داره اون برپزن هم بیار چون دهن پر حرف نزن هیچوری گله نداره الان دی کسی گله نداره پس چرا محرم شدی؟ من به چاوش حق میدم هم دیش فقط برادرش با یه دختر استفاش کنه. نه با یه زن 4 موربه بچه‌دار. نه همه اینا رو قبل حق بهت گفتم. گفتم بیا علنیش کنی. گفتم به چاوش بگو. نگفتم. نگفتی الان نمیخواد. نگفتی به وقتش. خب وقتش کیه؟ الان که بردن خاصه‌گاری؟ چه می‌رسن داداشم بخواد برام از زن بگیره. خب الان واقعیت رو بهشون بگو. الان وقتشه دیگه. این دور به من لطف می‌کنه علیشه. من, من دخل آدم صابیه. که به دلت نشسته هنی؟ علومه نه نشسته میگم ندیم گفتم نه منیجه نهل دیگه خونه آدم حسابین هم منیجه که نیستن بس. مصافر کشی کنه تو خونه چلمتری زندگی کنه اونم من مثل منیستم من, من نگفتم بیابرت خونه بخرم من نگفتم بیابرت نمیخوام بخری تا وقتی اهلا نشتن کردی پولتو نمیخوام این ده خلی الان میخواهم یه چیز دیگه بهت بگم فقط یه بار میگم بشه هنیز تمومش کنی خوار زن چابوشو من تعمالشو ندارم همین یه بار دارم بهت میگم اگه نعنگی دیگه نیست من تو خیر خیره زیر دینیشم چکلی بشم حملن خیلی خوب نعنگو نعمنو بشم هنیز میخوامت شما دل دریاست شما دل دریا آقاین Oreme mandalam dargyas vali in ke be muhabbat das modar ke nadasham ba u man tezghale shod hajmatian faqat chawash بم یادت هم اون من هست داشته باشم چاووش بهم یاد دستمو بالا نگردادم چاووش پدره چاووش مادره چاووش برادره من چیم تو رو نمیدونم ولی خودم غلامتم انقدر چه خاطرتون میخوام سنگم نزن چون دوستت دارم اون راحتام که تو رو دروسی رفت خواستگاری یه زن دیگه سنگ زدنه من خلش حلش میکنم منش واسه حلش میکنم الان کریم بوسه شو شاخور رو روانه داداش بدون معاوضه بستم به من یحیف حلش میکنم Ma loostan aga, aga maasab. Aga, aga. Aga, aga, aga. خلا خرد که چه پالونش از دنبال کشیدن خره خسته شدم دارم پالونش رو آدم از نوندونیش خسته میشه از الان خستم توقع کن از الان به گذشته که پکت کنم خستگین در میره همه که قدیم ها یه چیزی دیگه بودم ماشینه تو فروختارش واسه مریضی آب جیم نه واسه جهاز نیلا واسه شدی؟ من همیشه راضی بودم اما نه اینکه کشون کشون ببرنش ندارن یه خدا بزید با ما باچ بکنه با باش باباش یه دعای خیل واسه بخونه نپسکی برده که خودت میدونه میزرسی پسر آجیب ببینی داری با من حرف میزنی؟ اینجا به آتیش بکشه هندگی خروز بردم مودل جدیده شریف به باسکوله با ما شدید شد نسو نس. یه پیش خودم نه ساعت تا رو بفرست ستاره بفرسه که بیاد اینجا با این پسره هنیف هر روز عره بده تیشه بگیره توکل جون بعدشم من از کجا میارم نسبه اجاره این بساتو بگم نده بابیه صدق خور نیستم صدق خور رفیق نباشی صدق خور چی نخواه باشی کریم نیستم برم یه وقت دیگه بشیم به چای و هر فیالی چه سجده ای؟ من هم جده دارم بهت برم مورتزا شبونم چه آشخان؟ یه چایی برداری بردو بیار رو چه شما چایی خودتون میخوام درنگ به هم برگرم رو چه شما الان درنگ چای دورنگ اونده اون زنم علیمه شما همیشه از زن خدا بیامر گفتی ولی بعد پسر چیز نگفتی دستش چ من نمیم کردیم رو نفرینه بکنه او که چه شووش خلا بالا پایینت بکنه من میگم وقتی امشب قفز زنجیر ماشینش رو دستش دیدم شصام خبردار شد که ماشینش رو فروخته نوندونیش رو فروخته چراشو نمیگم تا خودش به ولی میخوام بهت بگم اگه وقتی ساعتی ثانیه‌ای بفهمم که این همه سال کریم بوستان راست میگفت و تو خاکی به ثانیه نرسیده میذارمش کوله هم تو میدون میچرخونه میشو ازش حلال بودی میطلبم که چرا من رفیق به ادعا شک کردم بعدش بیانم سراغ تو تو چک سرهنگی میخونم تو گوشت چه قانون بذاره چه نذاره دارو نداره تا کل میکنم جلو خونه کریم پیاده میکنم اگه من راست گفته باشم چی؟ گولت میکنم تو میدونمی چرخونم ازت حلال بولی میگیرم که چرا من به قموخیشم شک کردم مثل که شما دوست داری کریم بوستان راست بگه بعدیالش خیلی خرم به خواب اعتقاد داری زه خوردنه چرا میگی به لیلا زنگ نزنم؟ چون نمیخوام دیگه. خونه. خب زباش لارسی. نمیخویدی؟ مشاهده نه. دیفه ایمان. دیفه ایمان. دیفه ایمان. Mida ma baba Karim mustsam چیزی نمیگه اما لیلا خونه نیست. از آخرین باری که از میون در و پنجره با هم حرف زدین خیلی گذشت. میگم هیلا سلام نکردی که بزنید سلام امیسای که هم بارا جامعون سلام آقا جام سلام آقا جامعون فقط به بچه نگیم مشابه مشاونه نمیدم بگیم چرا نمیدم گفتم بهش ضرار داره برایم سلام آقا جامعون چه سویش Püha naine جواب selline. Kogu hulk لیلا با اون رفت یه اونم خونه بخت حنیف بردش لیلا رو اینجوری دیدی؟ من لیلا رو لیلا دیدم بسید همیشه؟ بی خدافسی؟ من سوال که جوابشه میدونم جواب میتونم می بدم سویچ ماشین شد جایزه خواهرت. میر پیش جواد پارسی یه تاکسی کریه میکن. منصفه. و خارج مصفی با ماست و خارج قطعات با اون 5 پ. به کلومش پابنده حرفش حرف امضام نمیخواد بین بری حرف شرف بود. من سر دست دادن مالم به کسی توضیحی ندارم بدن هیچ که لیلای معمولیت بود معمولیت دوست داشتن که بعدم دیگه حالا تموم شد و رفت و حالا ما باید بشینیم اقب خوش بختیش تماشا کنی. نه اول بعد. خوبه که حواستون به جهازش بود؟ البته البته. چک دادم به چاوش. آخ خدای بزرگ. این با شما کار داره آخ نفهمیم نفهمیم یه خود از دل خورم دنبالم نیا که دل این چک چیه آقا کریم نگو که بی خبری وقتی میگم بیخبرم با اوت بیخبرم میگم لیلا رو با چمه برد میدونی چرا لیلا رفت نگاه هنیف توش خط نشون بود چی گفتن چی نگفتن من نمیدونم اما لیلا الان باید پیش آراز باشه حالا آراز کجاست کجا نیست اونم من نمیدونم الان یه جا داداش هم که آبجیشو با خودش ببره بعدش مناظره و ازدواج و مبارک باشه اینشالله این که میگی بیخبرم بیخبرم و الان خبر شدی خبر بدیه نه خود شب از چی زدی این چه کنه به سیاه ها روزی برقرار شد چه خدا؟ چه که بگیر؟ <تصفح> نه بابا آقا می سرحال نیست چون برو تو خوب دیدمش، سرحال نیست مچونام نکن چه که بگیر؟ ماشینت که؟ نیست ماشینت شده جهاز خوب میدهداشه من میگم آقا مالش خود نیست بابا تو رفیقشی فامیلشی دستتون زیر سر هم بوده و اوزاد خوب نیست اصلا بگیم این چک تو تو جیب من چک منم تو جیب تو سفید امضا میگی سفید امضا نه رقم بده میگی رقم نه به من خودم می میگیسم ولی چکم رو بگیر بگی بذاریم این زندگیت یادر سرسامون بگیره که چی بشه؟ هوا آخون به رفیقشم زندگیت خوب نیست بایم قائلن تموم کنیم الان دیگه من داماد دادم به تو عروض دادی به من هر رقم رو قبول کن یه دستی به سر این زندگیت بکش عذاب وجدان اومده سرابه آواره شده آراز انقدر حرف نکش انقدر تیک بار نکن قبول کن هم. این همه سال دویدم دنبال حقم حالا تو صدا خفه کن گوله در کنم رقم بدم یه دستی بکشم گوش زندگیم از حقم بگذرم حقم یعنی از پول بگذرم بس دردت چیه؟ درد چیه در مظلوم یه عمر درد و دوایی این دو تا چیه؟ بیس سال مچال مردم شدم چون میکنم نماله یه حق خیالی داره میدوه رسوای عالم آدم بشم حالت خوب میشه؟ رسوای کار نکرده؟ آها حالا رسیدی به درد ظالم شریف بوستان؟ بچه که حتی عروسشم حرفشو باور نداره بچه هست کریم بوستان لجبازه بچه نه لجباز نبود رقم میداد این دوتا خانواده رو دور هم جمع میکرد حقیقت اگه روشن این دو دوتا خانواده میتونن دوره هم جمعشن شند رو باره من رشبه نمیگیرم پسر ودی میخوام باور کنن همه همه یعنی مردم نه نه نه خونواده خونوادتون که مثل کوه پشتتونم بره البته مثل کوه پشتمن چون امیدوارم حق با من باشه داغه آره به دلم مونده میپرسم به باره Näh! چی میگم؟ همه بگم یا اصلشو نه عزیزم اصلشو بگم ودری در عذاب علفت یا از من رفاقت میخواد یا از اولادش وفا میخوای رفاقت کنی؟ من اگه رفاقت کنم باید از حق شما بگذارم با این کارت ستار رو آتیش میزنی تا باورم نداره الفت که تیکه میمدازه پایی چای خوردن اینه زنش خوبه نمیگه اینه من نه بابا تو چه قدری همشه احمد جلوتر بود اون فرش داشت من گیریم اون تخت داشت من دوشک اون ماشین داشت من موتور. نه این که باهم کورس کذاشته باشیم کورسی باشه در بینا نه اما مردم خب این دیدن میگن بعد بعدی کریم بوستان افتاده به مرد خوریم ای داده بیدام کریم بوستان و مرد خوری بله بره این الان میخوای چیکار کنی؟ اون موقع که ماشین مال خودتون بود، خرجمون نمی‌رسید. الان که باید سهم شریکم بدیم. واای، خرج دارو و درمون مادرت، خرج ستاره، خرج شکر یه چیزی راجع به بابا بگم ناراحت نمیشی؟ چرا ناراحت میشم؟ مگه آرزوی یه کارگری که توی حجره کار میکنه چیه؟ رفتم ناراحت میشه که اونم خب یه روزی برا خود ناراحت بر... ناراحت میشم اه؟ یخجال خالیه تایه بینجا انبارم در اومده خب برا اونم ناراحت شو چیه؟ ماشین خواستم؟ ویلا خواستم؟ میگم ستاره میگم شکم میگم خرج کیپ و کتاب و درست ستارت تو چرا اومدی ماما سرما میخوری خام پیشه باما باشه برو بردارم بیبریم Saatun, saatun, hujil, hujil, بذار وسط که دوست از واقعیت با خواهش ندوشون مال مردم خورده آبه رو داره چک دادی نمایش را ادختی تو بیداره صد خورده شما گردن کش کرد او حق شماست دست ما رو بگیر منو روزا کشش باز بود انقدر باز که خاکستر کاغذ مهر آقامونو توی قندون روی میزد ببینه چونم من خوش ادین از آتا بکر کنم شایتونه باره مردم رو تیش بز که حتی یه درست دارم تو آگوش نگه باز خاطر لیلو را تنها میمانم میدانم میآمائی با تو آرامم بیتر تنها Kõik!